شاید ش دقیقه منتظر رو استاد بودی و یا سیزده سال منتظری برگرده پس خوب میتونی بوی این ساعت رو حس کنی و همراه هجده بنفش امروز باشی. من به اتفاق کامران رژین با شما خواهیم بود در سی دقیقه آینده با منتظرت بودم منتظرم باش. آخرین چیز عالم واسه اینه که صبح از خواب بیارشی و تر از اون اینه که باید زود بیارشی حالا اینا رو بیخیال و تر از همه اینا اینه که دیر بیدار شده باشی باید میرفتی سر یه قرار ملاقات کاری مصاحبه استخدام کنفرانس دانشگاه محل کارت باید دوش بگیرید تو لباسات بگردی دنبال اونی که آقاش صابتره تره چرک نیست اگه مردی تو اصلاح کنی اگه زنی به خودت برسید اگه مادری چایی دم کنی اگه پدری که مگه هنوز خونه ای تا الان رفته باشه بیرون اون سنگی که میگن یه لقمه نون زیرش رو پیدا کرده باشی تازه باید خیلی خوششانس باشی که دیشب که خواب بودی اتفاقی نیفتاده باشه مثلا کسی عوض نکرده باشه که راجبت تو فیسب کلی بعد و بگه یا توی یه جمع مثلا دوستانه پتت رو رواب نریخته باشه تازه باید به خودت بقبولونی که اصلا هیچ اتفاقی نیافتاده تا دست برای اتفاقات که احتمالا افتاده هم دست خودت نبوده باشه با دکمه پیرن باز یک کفشای سرپا و احتمالا یه لغم نون که وسطش پنیر گذاشتی یا نزاشتی بودا بودا در خونه رو باز میکنی و فکر میکنی داری وارد شهر میشی انگار که تا الان یه آدم پنهون و یه مأمور سرویس مخفی یا یه مجرم سابقه داره تحت تعقیب بودی و حالا خودتو آشکار کردی فکر کنی و نکشتی و کسی هم تو تقریبه نیست اون نیم ساعتی که طول میکشه به ایستگاه اتوبوس برسی، باید جواب سلام عباس آقا بقل و عبدالصمد آقا نونواهی رو بدی یا وحشت زده. و تا حد زیادی مخفیانه قدم برداری که هیچکدوم از اینا نبینند مثل وحشت از گلوله‌ای که تو رو نشونه گرفته باشه. مثلا اگه پیدا بشه بیاد تو این هاگیرواگی، راجب کنکور ارشاد ازت بپرسه. یا همسایه‌ت اون جلوی بگیره راجب اینکه چرا زن نگرفتی، نصیحتت کنه و انتقام تکلخ شدن بنزینو اول سوبیت تو بگیره. وحشت و هراس از انتقام به قدمات چتاب میده. به خودت که میای میبینی تو ایستگاه اتوبوسی و خودتو برنداز میکنی که بفهمی هنوز زنده یا نه. مرد مسینی چنان از شدت سرما صرفه میکنه که انگارصد سال آفتابه ندیده. یه کوچولوی دبستانی هم دستاشو گرفته جلو دهنش که با ها کردن گرمشون نگه داره. مرد مسین طوری نگاه میکنه که باید کمکش کنی که سوار اتوبوس بشه. بعدش هم نوبت بچه دبستانی است. اوه نه الان قاعد جا افتاده و میدونی سوار اتوبوس میشی هیچ کدوم همدیگه رو شناسی، ولی دوست داری بری از تک تکشون بخوای که موقع پیاده شدن تو ایسکا لفتش ندن که زود برسی سر کارت هوا سرد ولی تو عرق می‌کنی موس تو نگاه می‌کنی ولی میدونی ساعت رو یادت رفته بیاری موبایلت اون که دیشب نزدی بشار مسافر که کنارت نشسته نه نشستی صندلی گیرت نیومده. خب از اونی که کنارت سر با وایستاده میگی ببخشید ساعت چنده؟ قیافت شبیه مرده شده که هم مرگ برگشتن اما مرگ برگشتی که عکس تو قاب بگیری یا حلقه ازدواج رو از اکسات پاک کنی برگشتی که موقع سوار شدن با اتوبوس به مرد موسنی که میخواد سوار بشه تنه بزنی تا های صندلی گیرت بهت بشینی از مرگ برگشتی واسه چی؟ که زود برسی سر قرار مهم تو این وسط قرار خیلی خراب کنی، برگشتی تا تلخ ترین بوسه ها بگیری ولی شیرین ترین حرفا تو نزنی تو تخت خوابت از عشق حرف بزنی بعد ببینی تو تخت خواب ای مردی معشوقه یکی دیگر رو میدوزیدی ولی باز کسی نیست در آغوشش بگیری و اطراف تو نگاه می‌کنی خودتو گم کردی و میونه انبوه اخباری که از قتل و تجاوز و اعدام نوشته پیدا می‌کنی شاعرای می‌خواد که عاشق معشوقه اون باشی چون معشوقه خودت درست ندیدی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 میگی چی؟ میگه حشر رو به ساعت پرسیدی بدون اینکه ازش تشکر کنی از راهنده اتوبوس میخوایی نگه داره که با موتور بری آره یه اتفاقی افتاده وقتی خواب بودی یه اتفاقی افتاده وقتی به چهار سال دانشجویی نگاه میکنیم یا چند سالی که از کارمند شدنمون میگذره یا اینکه مثلا به تعداد سالهای دوران تهر بیتردید این جمله بر سر زبونمون جاری میشه که ه چه زود گذشت؟ شاید یادمون رفته ساعت رو که منتظر آخرین نمرممون بودیم. روزهایی که به انتظار جواب گزیش گذروندیم و ماه سالهایی که جواب مثبت رو تو رو یا آره، شنیدن انتظار،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 <تصفيق> روزهای و فونیتن به دست و پازنت در لجمع بلند ش برو مثل مرد خواهش کن به مبتلا شدنت به زن ادامه بده به هستگاه نه حاللو نقشه اوم به پیرتر شدند در ترند شبیه روح پر پرزخ در شعاه وجود جرقه ای به حضورت بزن ادامه بده به پرسشی که تو بودی به پاسخی که نبودی رسو در اون کفن به چهار به ساعت به منطقه سوری به کرمهای اسیر بدن ادامه بده در ادامه و طب سنت جدید و تاسیس میریم سراغ یکی از هنرمندای خوب کشور این شما و این هم جناب علی رضا روشن که افتخار و یکی از داستانای خودشونو برامون خونن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 گفتم جنازه نداره گریه کردم گفتم جنازهاش پیدا نشده باز صدای مورقه دریایی آمد صدای باد هم آمد فکر کردم روز است اما خانهش تاریک است و پردههای پنجرهش از باد ساحلی تکان میخورد گفت میام بریم پیداش کنیم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 منو اونجا کاشته بود هرچی هم زعنگ می بر نمیداشت. داشت اسمثاب دلیور می شده. ولی جواب نمیداد وایبرش هم نوشته بود آنلاین زیر آفتاب منو کاشته بود هر کمم از اونجا رد میشد تیکه میداد ماشینا ماشینا از اون سمت خیابون بوق می زدن. من منم هی hey, گوشیم دستم بود زنگ می زدم بار زنگ زدم اصلا این پسر با خودش نمی اون ساعت روز من زیر آفتاب اونجا کاشته همه کاراش همینجوریه مسئودیت نمی پذیرره که.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 تازه طبقه بالای خونه‌شون هم کمپلت دادن به این یه ذره احترام <تصفح> دیگه نمیده. آدم حسابش کوسه دستش 3 پولشه یارو هنوز دو ساله نیومده با من پایینتر پایین‌تر نشوندنش رو میز رئیسه داره بعد من ده ساله تا دیر وقت میمونم کار میکنم. ترفیق خبری نیست اضافه کاریم هم کم رد میکنم آدم باید به چه دلخوشی کار کنه امروز رد شده سرشو بالا میگیره سلامم نمیکنه.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 باشه صبر میکنیم تا دو تیر تا هده تیر اصلا تا هر وقت مدش هستی یا انتظار خوب بلدیم صرف تا صدش رو رفتیم چند دو اصلا. رسم زندگی همینه همیشه باید منتظر چیزی بود این بود اپیزود دوم از فصل کم رادیو 18 بنفش اپیزود بعدی ما 18 بنفش تابستون است دو هفته دیگه منتظر ما باشید و ارغوانی بمونید و امیدوار و تم